ما دومن بداریم، بیشتر نداریم. یک قرآن هست، من به بی اصلی بعد حدیث هست. اگر به این دومن به محکم و با استحکام اینها رو چنگ بزنیم، به هدف اصلی میرسیم. اما اگر کسانی بیان قرآن و حدیث را به میل خودشان تفسیر بکنن و به ما اجاره ندهند که ما در اون مسیر درست تفسیر یاد بگیریم. از علما یاد بگیریم قطعا به انحراف می‌رود المجبور ای این دیگه هرچی میان قبول بکنی حالا برای اینکه اول اینو بدانید پس قرآن و حدیث منبع اصلی ما هستند برای فهمیدن قرآن علی هرکسی مشکل اساسی روسیه در کل جهان این فرقه‌ها که ایجاد شدند این سیاست‌های جهانی کامن در خور می‌ریزند در جهان با خور می‌ریزند میشودن در کده قرآن چه چیزی دی؟ آمده تفسیر غلط قرآن هست. ایا کسی بیگه من فلان مذهب دارم یعنی در فلان فکر انگیزه هستم یا در خون انسان رو میکنم می یا در انسان کافر میکنم تکفیر میکنم به زعم خودشان به گمان خودشان در از قرآن استنباه میکنم اما تفسیر غلط آیات هست برای رسیده به مقصد باید تفسیر درست استفاده کرد ولی قرآن را به صورت خدا فرموده مطابق کنیم در قرآن وقتی ایک آیه میشه نباید اطلاق آئی رو به شخص خاصی اونجا بچسبونی قرآن, قرآن این بگنی قرآن کتابی هست رحنما نوری هست برای جهانیان یک روشنایی در تاریخی جهل جهل تاریخی و یک مرض هست ما اگر در خود تاریخ جهل بخواید پیروز بشیم بعد با نور قرآن حرکب بکنیم و قرآن تنها برای یک شخص نیست قرآن برای کل جهانیان هست حالا ما بگیم که اضرای آیه قرآن مخصوص او بک بوده یعنی موعمله کنی یا فرای آیه مخصوص عمر بوده یعنی نگیریم فلان آیه مخصوص علی بوده پس دیگر حقی ندارن نه اینجوری نیست اونها رو شامل میشه اما قانون برای حمگان هست اونها را شامل میشه اما همگان را راهنمایی میکنه بعد به این صورت قران استفادی کنی اگر اینجوری باشه پس قران بیکار میشه برای اونها اما دفعه دیگه حالا قرآن کلام بر فرمودند که من این دین رو کامل کریم برای همه ایتان های از اونها نور بگیریم پس در قرآن اول اینها رو می‌کنیم خداوندی خدابند متعالی چیزها از ما میپرسند هر پیغمبر آلا انبیا آمدند انبیا چرا آمدند از زمانی که آدم رو خالق کرد قبل از خلقت آدم هنگام خلقت اروه خدابند متعالی از همه اروا، احد و پیمان گرفت که فقط منو عبادت میکنید فقط منو عبادت میکنی و فقط از من کمک میجوید از همه انسان ها گرفتم بعد انبیا و فرستاد انبیا بیا انسان ها به من متصل کنید انبیا به خاطر خودشان نابودان انبیا مخصوص مقصود ذات نیستند مقصود انبیا و هدف الهی ذات باری تعالی است سوره فاتحه رو درست تفسیر کنید از سوره, فاتح دلوقتي دلوقتي دلوقتي چ holy, چ سورة فاتحه درست خدا بخیریم. می میفرمایند که یا تناوذ و اییاک نستعین. تو گورا چی میگه؟ اییاک تناوذ. این سوره فاتیه هست اگه کمی عربی یاد داشته باشی اییاک فقط ترا را عبادت میکنیم و فقط و تنها از تو کمک میجوییم. واسینجور خداوند تعالی میفرماید پس چرا دنبال دیگر میریم؟ چرا دنبال این رو خدا میگه فقط اینجور بگی اییاک تناوذ فقط تو و فقط از تو تو و از تو تو و از تو کل قرآن تفسیر همین دو حرف است. حدث اصلی، این درست کردیم عقید درست کردیم چرا؟ چون نبی بخاطر همین آمده پیغمبر هم بدون این نمیشه زندگی کرد. پیغمبر محتاج همین هست پیغمبر توحید داره از الله رب العالمین تلم میکنه پیغمبر کاری نمیتونه بکنه اگر پیغمبر بتانای کاری میتونه بکنه پس چرا قرآن اومد؟ چرا جنگهار رو رفت چرا با مردم رفت تنها کاری نمیتونه بکنه پیغمبر نمیتونه با وجود ادبال داتی باری تا آلا هست اونو بحکم بگیری و هدف همین هست انهی بخاطر همین آمدن انبیاء در حیات خودشان دوچار مشکلات بزرگی شدن نبی وقتی که نمیتونه اموی خودش را نجات بده نبی وقتی نمیتونه خانواده خودش را نجات بده نبی وقتی نمیتونه قوم خودش را نجات بده و هدایت بده پس چگونه دیگران بعد مرگ از او متصل میشن حضرت ابدال قرآن خداوند متعال کل داستان ها رو بیان کرده حضرت نوح علیه صلات و سلام وقتی عذاب باش می آمد به بچش کنان گو بیا سوار کشتی میشه راه نجات کشتی نو هست در جا دیگه راه نجات نیست چه گو سعابی جبل من به اکومی را اکوم نجات میده فرمودن که لاسی مليوم این نجات دهندی ده نیست فقط الله رب العالمین نوح نتوانست بچه خودشو نجات بده بعد از وفات بعد این قرر شد نو دست به دواج رو فرمودن که باره الله شبا با من واده کردی آلتون نجات میدن آل غرض شد اینجا این بچه من غرض شد فرمودن که این نو من این که این عمل نو غیر صالح این اهلتون نبود اعمال صالح نیستن او را پس د... از این طلب نکن جادی قدوان دیمتال می که خدا مثال بیان میکنه دو پیغمبر را دو پیغمبر را که دو تا خانوم داشتن یکی نوح و یکی لوط حضرت لوط خانوم کافری بوده حضرت نوح هم خانوم کافری بوده اینا دو تا پیغمبرن خانوما کافرن اونها نمیتونن نجات بدن وقتی که عذاب الهی بر قوم لوط نازل شد گفت که وکانت امرات الملغابرین خانوم جد پس پاسماندگان شد عذاب او اون نازل شد حکم بدن نمیتونه خانم خود خودشوق در جلویش هست نجات بده. پس ما دنبال کمپ حکم بده از قبرش بیخانه الا ما رو نجات بده نا کارو نه کارو نمیتونه. پیغمبر بدن نمیتونه. داخل قرآن ترسیل کنی، قرآن باز کنی. ابراهیم علیه السلام، امام امامالانبیا، امام خداوند متضد قرآن بن و اصل امام قرار دادیم. امام قرار دادی. امامالانبیا امام هست ابراهیم علیه السلام. نسل بی اسرائیلیها همه ابراهیمی هم از اسحاق آمد. دو تا فرزند دار. اصحاق. اصحاق داره. اسماعیل و اسحاق. اسحاق داره فرزندی شد نام یعقوب. یعقوب فرزندی دارن یوسف. دوباره این نسل‌های ها انبیا جاریش دارن. بعدها موسی آمد. بعدها ایسحام آمد. هزاران پیغمبر از نسل‌های ها آمد. از اون طرف محمد رسول الله آمد. ابراهیم با اون بزرگی که نسل انبیا از پشت ابراهیم داره حرکت میکنه و به جهانیان در نور افشانی میکنن اما همون ابراهیم وقتی که بچه نمیشه آجز از دعا میکنه خدای بچه نمیشم برای امین این بچه بده. فرشته ها آمدن در خونه ابراهیم علیه السلام همین ابراهیم هم نمیدونه اینها فرشتن فراغ غیلا اهلی فورا رفت ابراهیم علیه الصلاۃ و السلام اومد با یک گوسفندی رو کباب کرد گوساله رو کباب کرد جلو اونها گذاه گفت به فرمایت بخاری وقت دیدی نه دست نزدیک نمیبره دستهار هرکس نمیدم نارحه سوفا اوجس منوم خیفه ترسید گفت نه ترسید ما فرشته هستید ما فرشته هستید اینجا آمدیم چرا آمدیم اول به تو خوش خبری بدیم بچه‌دار میشی دار میشی حدا سارا رضی الله تعالی عنها بعد گفتند که بای از اینجا میریم پیش لوط و اون رو آزاد به قانون آزاد وازل می گفت این فیهم لوتا در اون قام لوط هست برادر زاده من وجود داره حال اون چی میشه گفت نه و بی چه خبریه ابراهیم علیه الصلاۃ و السلام علم غیبی نمیدونست است دوستاند کشت آورد اینجا دل اونها گوزاید دوستاند همراه ترسید چرا آمدن نمیدونه همین هار نمیدونه کی درکی نمی‌دانند نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلام دو وفات میکنه کاری نمیتونه بکنه دو نبی داره وفات میکنه کاری نمیتونه بکنه همین در می نمیافتند پس توحید را محکم بگیریم یگانگی خداوند محکم بگیریم دست صفات خدا هیچو شریک نگیریم نمیتونند مخلوقن اگر مخلوق انسان چرا خودشون شفاعت نمیداند چه خودم دارن در عذابها گرفتار میشن دارن می میرن وفاق میکنه خانا و دا از دست میرن اینجوری نیست خدا را بحکم بگی با خدا هیچ کس شریک نگیری اینو درست بونید بعد از اون به پیغمبر خدا بند هیچ کس بایشا برابر نیست نظبت ایشان ایمان داشته باشن بعد هم به معاد و آخرت این هر رو محکم بگیری این راه نجات ما هستن اونها فروعاتا در فروعات اختلاف وجود داره اما اختلاف نباید باعث تکفیر هم دیگر باشه در کافر بی کن هم دیگر و اونها دیگر زیاد مهم نیستن دور درست میکنید اون اونکی زاد خدا دست داره اونها رو محکم بگیری انشاءاللہ که راه نجات می آید